دور من پسرک را برمی‌دارم جلوی مدرسه بچه‌ها دورم حلقه میزنند. عجب آتشی میسوزانند. من بیشترشان را به اسم میشناسم. سر به سر آنها میگذارم. مردی میگوید آقا شما چقدر حوصله دارید من سر به سر بچه‌های خودم هم نمیتوانم بگذارم آدم دیگر دل و دماغ و وقت این کارها را ندارد همین قدر که بتوانیم لباس و خوراک و وسایل درس و مدرسهشان را فراهم کنیم برای سرمان هم زیاد است مرد هنوز حرف میزند و من و پسرک دور میشویم و راجیهای مکرر ابلهانه وقت پرگویی هر قدر که بخواهی دارند وقت جویی های وقت وقت بازی کردن با بچه ها را اما ندارند. یکی از بچه ها دنبالم میدهد و میگوید آن روز قول دادید یک کتاب برایم بیاورید. بر سر قولم هستم. قبل از اینکه مدرسه تعطیل شود به دستت می رسد. به بعضی هایشان گهگاه به دلیلی بی دلیل، کتابی هدیه می دهم. میگویم من آنقدر ندارم که بتوانم به همهتان یکی یک کتاب بدهم، امسال به بعضی ها، سال دیگر به بعضی های دیگر. پسر بچه‌ی شیطان فریاد می‌کشد. بزک نمیر بهار می‌آید. برمیگردم و به فریاد می‌گویم بزک چه بمیرد چه نمیرد به هر حال بهار می‌آید. ماه دیگر که بهار آمد یاد من هم باش پسر خوبم. چه دشوار است رؤیا را نوشتن. سرما یخ را نمی شکند. ما سرمازدگان آرزویی جز شکستن یخ وجود دیگران نداریم مگر می شود این است که افسرده می شویم و باید که از افسردگی دراییم. مادر با این دستهای سردت میخواهی دستهایم را گرم کنی بهتر است اول به فکر خودت باشی نهار چیزی داریم چیزی که چیز باشد نه هیچ خوراک نمیتوانیم نمی توانیم برویم آلودگی بیش از حد تحمل است نان پنیر و خیار خوب داریم سه تا تخم مرغ محلی هم آب هز می میکنیم سبزی خوردن با ترربچه های قرمز قرمز میدانم احترام به سفره در زیبا سازی سفره است راستش خیلی زیادی میدانی کاش با این سرعت چند را تا ته خالی نکرده بودم این کار فایده نداشت حرفها در چندت می ماند میشد، کپک میزد و بوی نامی گرفت. به جای پسنداز کردن حرفهای قدیمی حرفهای نو تدارک ببین. بیچاره زنانی که مجبورند از شوهران وفادارشان در تمام عمر همان جمله را بشنوند که مردان معمولاً در مدرسه یاد میگیرند. این دوای تلخ بدبو روزی سه بار صبح ظهر، شب تازه عصرها هم شاید درست است نو کردن یک ضرورت است همانقدر که عتیقه کردن بحث فقط در جنس موضوع است و درک این اصل که چه چیز را باید عتیقه کرد چه چیز را باید نوع نو به کار برد و یا دور انداخت بستنی را نمیشود. عتیقه کرد اما آن گندان بلور یشمی را می‌توان یک روز همسر پیر یک باستانشناس به من گفت شوهرم را درست به این دلیل که یک باستانشناس است و دائما با اشیاء قدیمی سرگرم است دوست می‌دارم چرا که قدر مرا هر هرقدر می می‌شوم بیشتر می‌داند حال مدت هاست که به من به عنوان یک ظرف بلور بسیار نازک نگاه می‌کند و از من همان طور مراقبت میکند که از آن تنگ قدیمی بالای رف او همیشه میترسد که یک نگاه بد هم آن تنگ گرانبه را بشکند همانطور که یک صدای مختصر بلند قلب مرا یک مسئله اساسی را اما باید به فکرش باشی بر تعداد کتابهایمان من چند تایی بیفزاییم حرفهای نو معمولا از کتاب‌های تازه برمی‌آید. چند داستان نو و یک کتاب در باب علم روز، باشد؟ جای تأمل دارد. راستش دلم می‌خواهد 100 سال تنهایی را بخوانم و اثری از مخمل باف را خیلی گرسنم. تا خانه را بدویم، مردم به ما می‌خندند. تو همیشه از خنده مردم کلافه‌ای. چرا؟ چه بهتر از این که به هر دلیل اما نه ابتزال بخندانیمشان؟ تو وقتی میبینی که من افسردم نباید بگذری، سکوت کنی یا فقط همدردی کنی، بنا کننده شادیهای من باش. مگر چقدر اخت داریم؟ یک قطر ایم که میچکیم در تن کویر و تمام میشویم. حال به احترام این پسر که تمام وجودش شوق دویدن است، بدویم، باشد، چاره ای نیست. گاهی سریع زیباست، گاهی کند. شرایط حد شتاب را مقدر می کنند. می دارد دیر می شود. چه کاری دارد دیر می شود؟ همینطوری کار به خصوصی ندارم، می دویم. تو عرب میمانی پسرک میخندد ریسه میرود می, رود، می نشیند. همیشه برای او تعجب آور است و دلنشین، تو از خدا میخواهی که او بنشیند نفس تازه میکنی و به ما میرسی این بچه توی کالسکهش زیادی تکان میخورد. بس است دیگر مادر فرمان داد که بس است دیگر لا چند باغ ملی خوب داریم گرچه با آنها پارک میگویند که واقعا کلمه زشتی است اصر فقط یک ساعت را در باغ ملی کوچک ساعی بگذرانیم پسرک روی سرسرها سر میخورد، ما زیر درختان هوا آنجا بچه های مردم را تاب می دهیم و در شادی شریک میشویم. راستش گاهی اوقات حوصله بچه ها را ندارم بعضی چیزها را حتماً باید یاد بگیری با تفکر، تلقین، تکرار، مطالعه و با تکیه به منطقی جدلی صد بار گفتهای بعد از اینکه کمی بزرگتر شدند حتما یاد میگیرم اما حالا آسان نیست خسته هم می میکنند اما تو بچههای مردم را هم نگه میداری هفتهای سه روز نه هفت روز هفته آنها هم راستش گاهی حوصلهم را سر میبرند و خستهام میکنند خسته شدن و حوصله نداشتن اما به معنای دوست نداشتن نیست. راست میگویی. میرسیم. خانه برق دیروز را دارد. صبح نرسیده این جلا به اندازیم. شب مادر عاشق برق انداختن است. اگر بتوانیم بله، مادرم در نگهداری بچه ها کوه حوصله است. در آن که سالها پیش نوشتی، مادر را نیاوردیم پیش خودمان. دای آقا را هم نیاوردیم اما قصدش را داشتیم یادت هست؟ بله یک اتاق هم برای دای آقا برویم مادر را بیاوریم اینجا چای کمرش را شکسته برنج فلجش کرده یک مادر شوهر شمالی هیچ شباهتی به تصویر عبلهانیی که از برخی مادر شوهرها ساختن ندارد گاهی بچه ها را نگه می دارد و می خواباند. در کارهای خانه کمکمان می کند. سبزی پاک می کند ترشی و مربا میاندازد، به زیارت می رود، دعامان می کند. نماز میخواند. چقدر قصه او مظهر آخرین نسل از مادر هایی است که یک عالم قصه میدانند و خود مادربزرگ بزرگ قصه های قدیمی هستند. دیگر، مادر بزرگ ها را دارند در نوان خانه ها و خانه های سالمندان قتل عام می کنند. مادر را بیاوریم پیش خودمان. هم گره از چندین مشکل ما می گشاید. هم خودش آسوده می شود. دیگر برای خرید نمیرود. برای چیدن چای، آبران سر به سرش نمیگذارند. آن بالا می نشیند. عزیز و آرام. دواهایش آسان جور می شود. صبح های زود اگر دلش میخواست، میبریمش کمی روی کند تو میگویی ده دقیقه به من فرصت بده خانه را برق بیندازم شب با هم حالا چه کار کنیم؟ دیدار از یک دوست قدیمی که سالهای سال در آن دوران با او بوده ایم یادی از گذشته گپی برای تابستان یک تعطیل سه روزه در پیش است در ماه آینده آه چقدر خوب در روزمرگی زندگی، هیچ چیز شیرین تر از تعطیلاتی که به هم میچسمند نیست. باید که همیشه تقویم را در دسترس داشته باشیم، به خاطر آیندهی که به زودی حال میشود. در کنار هم راه میرویم، در کنار هم نگاه میکنیم. در آغاز هفته این در کنار هم بودن، دوش آدوش، قدم برداشتن، گفتگو کردن، آرام و زمزمه. اثبات است، اثبات نیاز هم نباید با تکروی شروع کنیم شگون ندارد این نیم وجبی را چه کار کنیم مادر نگه می دارد خوشحال هم می شود اگر مادر را نیاورده بودیم پیش خودمان یا اصلا مادری در کار نبود یا باغ چای را رهانه می کرد راه حل هر مشکل را زمانی بیابیم که آن مشکل واقعا رخ کرده باشد باز هم کالسکه را برمیداریم یا صاحبخانه خوب را خبر می کنیم یا آن مهد کودک که تا ساعت ده شب بچه ها را نگه میدارد یا با کوله کوه دخترک را می اندازم پشتم کمی نگاه می کند و بعد به چرت زدن می افتد. مگر عیبی دارد سخت بگیری؟ سخت میگیرد همیشه همیشه یک شکل وجود ندارد